شاد باشه حتی دیدار آخر شاید رسید از راه بردایی روز بهترش هوادارته چود بلدی بهخندی و چشم دل به موسی با دل بندی شبوا که در به سبز. پیچیده توی دنیا از عوج موج شادی تا فردا و پس فردا اجواه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا از عوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم حالا احوالتون چطور خوبین خوشین؟ ما اومدیم برگشتیم با یک هفته دیگه یک رادیو پس فردای دیگه پنجاب و چهار دقیقه آینده با شماییم این هفته آخر نیست هفته بعد هفته آخر شاعر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 آنجا به یاد شهرمان چشمان خود تر میکنیم گر نگاری یک زمان سوی لواسان رفته ایم با یاد او تا آبلی جان را مکدر میکنیم این عمر ما هر لحظه یک روز گردت خاطره قدرش ندانیم بعدها یادش مکرر میکنیم با تشکر از شاعرمون این هفته همونطوری که ایشون هم خب تو شعرش اشاره کرده بود میخوام حسابی با هم خاطره بازی کنیم و نوستالژی بازی و دل ورود هر خاطره از در, خاطر در بریم بریزیم وسط ببینیم تش چند چند میشیم بر حال یه ایرونی آقا به چی زنده است؟ خانما آقا دختر خانما آقا به سر یه ایرونی به خاطرش زنده است. پس بخورید و بیاشامید اما خاطراتتون رو فراموش نکنید چون رادیو پاسورده این هفته یعنی توی گفتم هفته یکی مونده به آخر. اصلا یک مدل میدونی همچی خاطر تو عجیب غریبیه.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 خوبین چه خبره همه چی خوبه خب همین اول برنامه بگم که امروزی سورپرایز دارم براتون و سورپرایز رو باید حدس بزنید حدس بزنین چیه جان رادیو پاسورد تمدید شده میخوام 1000 تو دیگه بسازیم نه بابا دیگه خیلی دیگه رویایی فکر نکنید دیگه صد طبقاتونو میارم پایین اون قدم بله اون سورپرایز اون یه چیز دیگه از اون سورپرایز نیست سارا رو که یادتونه سارا با الی اومده بودن دو روز پیش ما بودن مهمون بودن دوره کارآموزی نه ازدواج نکرده نه اون سامی بود قرار بود زنش بدیم سارا هم از هفته پیش به ما پیوست برای گذراندن یک دوره کارآموزی چند هفته ای و تو این برنامه های آخر و برنامه ویژه نوروزی هم با ما خواهد بود سارا پیش ما سلام سارا سارا سلام حال شما خوبه خوبی خیلی مرسی. خوش اومدید به به به به صفا وردی خوش میگذره بله. خیلی زحمت کشیدی به خیش این خیش همه راه از سوئد، اومدی بلاخره اونجا سردتر یا اینجا؟ یکیه خیلی فرق نمیکنه. نمی دو درجه آره میبینم اینجا خیلی ریلکس لباس میشیم ماهی میلرزیم هی میریم تو خودمون کلا میذاریم سرمون کابچن <تصحیح> تنم میکنیم ولی سارا خیلی ریلکسه خیلی خوش اومدی سارا مرسی ممنون منم همینجا به همه پسورده عزیز سلام میکنم. امیدوارم که حال همگی پسا برجامی پسا انتخاباتی بله، بله، بله، و البته پیشان نروزی باشه بله حالمون خصوصا پسا پیشان نروزیه و دیگه کم کم رادیو پس داره تموم میشه ای بله ناراحت شدی تو هم نه خیلی به تهش رسیدم دید. هی بابا. بابا سارا باما است امروز باما است از امروز هم باما از چند روز پیش ماما بود امروز رسما معرفیش کردیم و ازش بهش خوش اومد میگیم خیلی خوش اومدی دیگه تا آخر پس بله تا برنامه هزار باما خواهی بود برنامه نوروزی هم که خایم داشت بازم با احتیاط در برنامه نوروزی رودی فردا باما هستید جناب منافی شما میخواییم بریم میتونیم بریم اما یکی باید برنامه اجرا کنیم بچه های جدید قدیبی یا اینجوری قبول نیست بله. ما از اون دورانی که رادیو فردا گوش می‌دادیم تا امروز که شد پس فردا دیگه نمیخوایم برگردیم راژیو دیروز گوش کنیم ممنون؟ خدا بله خیلی ممنونم لطف کردین من میرم و انجا در اوج همجوری از کادر خارج میشم و اینجوری میسپرم به این دوستان عزیزان کاراموز که البته دیگه تا آخر پس فردا دیگه بعدش دیگه ای باشن دیگه از کارآموزی میان بیرون دیگه دیگه میشم پس فردای جدی دیگه اینا دارن برای لب رفتن من لحظه شماری میکنن ها خوشحال خندون ای بابا ای بابا منم نباشم نسل بعدی رادیو پس پس پسون پس فردا رو به حال اینا ادامه میدن یه این جوانان جوانان وطن with the Oh yes yes Oh yes Say yes Sayt سلام فرشید جان باز خوبی؟ من میکروفون یادم میکروفون یادت میره روشن کنی <تصفيق> همجین روحبا حرف میزه چه آره. خواه؟ آره سلامتی خوبی خوشی از خوبی. آبا هوا چه از آب و هوا فرشید جون روزای آخر هفته پیش به جزی سری بارندگی پراکنده چیز خاصی نداشتیم اما مم. از فردا دوستای ساکن مناطق غربی و شمال غربی باید احتمالا آماده بارون باشن چون یه سامانه از شمال غرب داره وارد کشور میشه و همونطور که میگن ظاهرا توپش هم خیلی پره و فردا احتمال رگبار و رد و برق و این مسائل توی مناطق هست این بارنرگی ها تو روزایی بعد میره به سمت شرق و جنوب شرقی که بارش های اصلی بیشتر تو نواحی شرقی و جنوب شرقی اتفاق میفته بین روزهای دوشنبه تا پنشنبه هم احتمال اجاری شدن سیل هست متاسفانه تو بعضی از مناطق آره سیستان و بلوچستان و هرمزگان مراقب باشن دیگه بله بعد حسابی مراقب باشن البته من فردا در در این زمینه بیشتر صحبت میکنم پس فعلا نگران نباشید تا برگردیم و بیشتر در این زمینه با هم گفتگو نگران نباشید ولی ممکنه که بارون شدیدی بیاد و یه مناطقی ممکنه بله بله یعنی آب گرفتگی و از دو شنبه احتمال داره که از دو شنبه. فردا ولی حتما بهمون <تص> <تص> بگو منتظرم بهمون بگو ببینیم چه خبره مرسی سعید <تص> شی جون کم فروشی نکن گناه داریم به خدا برنامه 1000 متر روز دوشنبه 24 اسفنده بله هنوز بله سال تموم نشده بله سه شنبه 25 بله و, و شنبه 29 اسفندم میتونی بیای اصلا دو تا کار میشه کرد یا سه شنبرم بیای و بشه 1001 شب برنامه عین شهرزاد قصه گو و قصه‌های شب یا اینکه شنبه 29 اسفندم بیای فوز شهرزادو بزنی و بخونیش 1000 شاپ چطوره ها نه اصلاً خوب نیست چه پیش دادیه میدی؟ آقا ما هم هزار تا خودمونیم ما چیکار داریم شهرزاد چند تا قصه گفته عجب شاید یکی دیگه 5000 تا قصه گفته باشه ما باید حتما 5000 تا بریم بدبختی داریم ما. رادیو پاسوردا 1000 تا تمام بعد 1000 تا خدافظ بای بای اما جناب آقای احمد خاتمی که به حال معرفه بزرگتان هستم میشوند تا قبل از انتخابات هفتم اسفند ایشون این لیست انگلیسی رو کرده بود علم اصمون آقا هر جا میرفت از تو دهنی قاطع مردم و مدار و عوامل انگلیس صحبت میکرد دیروز تو خطبای نماز جمعه فرمایشاتی فرمودن که نشون داد ترز فکر ایشون چقدر عوض شده پیروز این انتخابات نظام مقدس جمهوری اسلامی و شما مردمید هر رأیی که به صندوق انداخته شد آری مجدد به نظام اسلامی بود جالبه ها تا قبل از انتخابات فقط صحبت از این بود که مردم چنین میکنند و چنان میکنند و توی دهن انگلیس میزنند و از این صحبت ها الا که مردم رفتن صاف به همون لیست انگلیسی رای دادن صحبت از پیروزی نظامه در ادامه ایشون صحبت بسیار آموزنده و زیبایی هم داشتن در مورد اینکه زمان شاه انتخابات به چه شکل عجیب و غیر ای برگزار میشد و شکر خدا جمهوری اسلامی اومده و دیگه اون سیستم رو جمعش کرد گوش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 اونی که شاه خط نمی باید نماینده بشه. یعنی واقعا خدا رحم کرد که جمهوری اسلامی اومد و به داد این ملت رسید. به خدا یعنی چیا لیست کاندیداها رو ببرن بدن دست شاه، پادشاه اسم رو خط بزنه بگه اینا حق ندارن نماینده بشن، مگه میشه؟ مگه داریم؟ شکر خدا، شکر خدا جمهوری اسلامی که اومد این مسائل به‌کل برچیده شد. الان که جوریه لیست رو می‌برن، دو دستی میدن خدمت آقای جنتی؟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 شقتم شاشقتم تم خیلی عزیزم یه شب تو پیش من بیا که من مریزم حرفوی تو نقه منو شسته عزیزم هرچی ازم بخوای دیگهم به پات میریزم حالا اونتن داغ تو می خوام چش ما یه ناز تو می خوام باز تو میخب تو بازی ش تکه آاصل تو میخواام؟ که س تو می خون خواهشه خواهشه دلم تنها بشه خوشکل مثل تو باز و پیدا بشین خواهشه خواهشه تنها بشه مثل تو باز پیدا دیگه شهرام دیگه کنیم؟ دوست داره سعید آ دوست داره آخه آخ خوشحاله شهرام خوشه خب بریم چیز کنیم بریم سراغ برنامه چی بود این الا اسم آهنگ چی بود اسمش چی بود آه چی چیزی؟, چیزی بود نمیدونم از اسمش هم نمیدونم چی بود فقط فقط به خاطر اینکه همه قرم <تصفح> می‌دادن ما قرم نمی‌دادیم موهای باز تو می‌خوام نمیدونم یه چیزای از این تو حالا منتظر بود اینو بزاره من اصلاً خونه نرفتم از کارم فقط میآره خیلی باشه دیگه ممنونم از شهرام به حال موجبات شادی و رقص دوستان رو فراهم میکنه بریم سراغ برنامه امروز خاطرات و نستالژیهای های کودکی بوی ایدی بوی توپ قیامی شماره 994 بدانید و آگاه باشید بعضی ها به قدری نسبت به کودکی خود نوستالژی دارند که حتی خاطرات کتک خوردن از معلم ها در مدرسه و کیسه کشیدن های بیرحمانه ننه جان توی و شکستن دست و پایشان هنگام بازی های خرکی را هم با حسرت و دلتنگی به یاد می‌آورند. پس چنانچه شما همین چنین هستید همانا از زیادی دیگر شور نوستالژی را در آورندگ از دوران کودکی خاطراتی چندان خوشی نداشته و کل دوران مدرسه به کتک خوردن و تنبیه گذشته و دلشونم هم اصلا برای اون دوران پنگنش نشده های رادیو پس برد دادا دادا تو تو تو تو تو بیا بیا سامی جان نظارت نمی کنی شما هرچی دلش میخواد خواد شهران دیگه, دیگه. همین دامبول و دامبول چی میگی من نمی فهمم چی میگی نمی دلش بیا آقا برکای این هر بیا بیا بسته برنامه بیشتر که نداریم که آقا بیا بستم بیا بستم این هفته دوستان عزیز به ما بگید از نوستالژی ها و خاطراتتون و اون خاطرات و نوستالژی هایی که همیشه با حسرت و دلتنگی ازش اشعاد میکنین یعنی این هفته نوستالژی کودکی جوونی دانشگاهی ای کافی جو جوب آبی سر کوچه ای تو پارکی تو خیابونی محله ای درز دیواری گُل هر چیز دارید کلاً تو دلتون نگه ندارید بریزید بیرون به ما بگید از قدیم گفتن خاطره رو باید با دیگران شریک شد دلیلشون دلیلش رو ولی گفتن دیگه یا شاید هم سن و سالتون آل بعضی از شنونده‌ها سن و سالشون بیشتره تا صحبت از قدیم و اینا میاد مثلا میگه زمان شاه یا چادم رضا شاه مثلا این موقعات می‌ذاریم یه آهی بکشن بگی آدش خیر چه دورانی بود آقا این هفته بهمون بگین بگیین چه خاطرات چه نستالژی هایی داشتین که به یاد آوردنش زربان قلبتون رو تونتر میکنه و شایدم هم از ته دل میچشین موسیقی موسیقی هم با ما، هم اصفن ما، هم ایجی، هم پاداش همه هر باهم میرادن. علی نگاه کن اصفن ما هست. و اصفندیه. من سوپ برداشت نکردم. اوکی. زمانی پرداخت دار که دیگه همه چیز گران باشه. اینم پخش راهه قربان. ای داد بیداد، ای داد بیداد، ای داد بیداد. 15 اسمند انوزوقشون رو نریختن. آقا ما چیکار کنیم؟ ما کاری از دستمون برنمیاد. ما فقط صداتون رو پخش کردیم دیگه. دیگه چی بگیم دیگه؟ حرفی نداریم بزنیم رو بدین یعنی چی پونزه هستفنده حقوق ملتو بدین آقا این چه زندگیه؟ شما چی میگین اینجا شلوقش کردی؟ حقوق ما بار آقا فیک بیال ما یه چیزی گفتیم اینا هیچی اصلا آقا من حرفی ندارم من اصلا حرفی نمیتونم بزنم دیگه هیچ از دست این اصلا حرف نمیتونی زد بعد بفتی داریم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 نیستیم من دیگه رفتنی هم من خودم شخصی دارم, دارم. دارم, دارم پس من موهامو نگهر میدارم نگهتو نگه من کسی گفت باید بزنیم موهاتو نه دیگه این دوستمون گفتن بندیم به تو نه نه شما نگهتو شما همه نگه موهاتون رو نگه, نگه دارین سارا الی چه جا. خبر سلام سلام بله بله. بله بگم به همه اون کسایی که دوست ندارم من بله بگم بسه تا بله بگم برای اونهی که دوست دارم خب حالا برو بریم ببینیم کامنت ها دستیم. از فیسبوک و تلگرام و اینستاگرام آقای مهدی یادی کرده از قصه زهر جمعه خانم مریم کار نوشتن و یاد تو سفای سدن ها وقتی کپون اعلام میکردن و همه حجوم می آوردن چقدر بد <تصح> <آلو> بود <تصح> اون روزا خانم مریم نوشتن که وقتی بچه بودم یه بار مامانم کتکم زد منم اومدم تیری په فیلم ها لباس لباسامو رو جمع... جمع کنم که برم اومد دید یه بار دیگه کتکم زد که چرا لباسای تا شده رو به هم ریختی یادش به خر کد قرآن این خانم مریم خیلی شیرین زبونه خداییش آره آقای محسن زارعی روزی رادیو پاس و شخصیتاشم برامو نوستالژی میشن آره hey. هی Hey. خانم راهیل عاملی هم نوشتن خونه تکونی عید و تمیز کردن امباری من چند بار داشتم زیر رخت که خواهرم میریخ روم که بازی کنیم خفه میشدم آخه ما تخت و این چیزا نبود که لافکورسی بود لاوستم راست میگه رخت می میچیدن روهم خانم موجگان کاشی عزیز اون دوتومنهای کاغذی که زمان شاه از بابا میدی میگرفتم ارزشش از تراولای امروز خیلی برام بیشتر بود. هم بیشتر بود بکنم دیگه دیگه نمیدرام شما یادتونه خب این کامنت ها بود و من تعدادی از امضا ها رو هم بخونم نه وایس یه چیزی من من یادمه یعنی چی من زمان شاه من من کجا بودم یعنی چی من یادمه این چه حرفیه من من من من آمی منو من چیزی هیچی راهی اعتباری راهی اعتباری راههای اعتباری رو خانم سارا براتون میخونن 97 ساله هستم از پرای نه شما جمعی گفت آها کلن دوستانی که آقا راه ارتباطی, راهای ارتباطی با, با برنامه بله، تلفن ها 2420 211 2433 2420 221 2463 2420 226 21 79 39 و تلگرام at پسفرد گرام در خدمت شماست همشون. بله, بله. امروزه اینستاگرام, ام... اینستاگرام و فیسبوک و اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام رو کامنت ها رو یکی کردیم امروز و امضا ها رو من براتون میخونم امضای اپلیکیشن رو مریم مار... بله. بله. از آرزوم حسام بیکلا از کلهپزی سر کوچه پارمین و پارمیدا کرج مهدی از, از ازمیر ترکیه اکرم و امین حسین باخشه کاردوس نگار مامان نگار مامان نیکا از تگزاس یاسین و آیسین از یوسفابور مرسی بجاید. می‌خوام. بعضی وقتا یهویی یه بی خود و بی جهت دلمون برای یه سری خاطرات دوران بچگیمون تنگ میشه یعنی جوری که دلمون یعنی پر میکشه که یه لحظه برگردیم دوباره به اون روزا دیدین؟ نصلا داریم توی خیابون میریم یهو یه چشمون میفته به یه چیزی مثلا چم دونم چشمون میفته به این چرخ و فلک این چرخ و فلک قدیمی ها یادتونه چهار تا جای نشستن داشت اما چرخ و فلکی با دست میچرخونداش دیگه فکر کنم اونا کلن, کلن وجود نداره ولی حال ممکن چرخ و فلکی بزرگ ببینیم یاد اون موقع بیفتیم بعد بچه بودیم گاهی مامان بابامون اجازه میدادن بعضی وقتا اجازه میدادن سوار بشین ای بابا یادش به خیر چه روزایی بود یادش بخیر. ده بچه را بیا دیگه دیوونه کردی منو جلگو بلک، جلگو بلک میخوا این زنم لهد میکنه اما را بیا دیگه دیگه دی چرا زدی حالا که میزنی دیگه من عمرم نمیام یا چرف و یا باید منو رو بکشی ببری منت دست تو چه به سرم بری آخه خدای من رو بکش خلاسم کن دیگه اما چنده این چرف و فلکه تو تو منه هاچ کنم اوه جان چرف و فلک بیا پدرجان بیا این بچه رو سوار کن ببین یعنی برسیم خونه میدم باباید با کربت سیاه کبودت کنه یه ها جا خوم پرواز کنم بیا بیا بشین اینجا آه, اه محکم بشین یا من آمادم آلولو گرفت. کاش مات کنم بیشی بچه بگو سر <تصفيق> با تو آب چه خوندیش بچه خوندیش <تصفيق> <تصفيق> مامان خشمگینی کمی بود؟ خب آقا این چی بود آقا بعد از سال که از کنار چرخ و فلک قدیمی رد میشیم مثلا انقدر دلمون حو از اون روزا رو بکنه نه این چی بود الان نه آقا چرخ و فلک مو اعمال شاقه بود دیگه دل رودمون که میمت تو حلقمون از ترسم که خودمون هم بالا خراب میکردیم کلی هم که بعد بیراث مامان بابا میشدیدیم تو خونه هم که میرفتیم تازه یه فاز کتک در انتظارمون بود این چه زندگی بود یعنی واقعا نوستالژی بچگی مو حساب کتاب نداره همش جنگ و دعوا و جنگ ازو هر چقدرم طاقت فرسا بشن همین که یادش میفتیم میگیم آخه یادش بخیر. همه خوبه البته خوبه دیگه خاطر هست اشکاله دلنگرانی ما از آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهده پیروزی باشد کامران ملک موتیی سلام چه خبرو از سینما؟ سلام خلیچو سلام همگی باید بگم چهارده روز به نوروز مونده هنوز هیچ فیلمی برای اکران نوروزی اسمش اعلام نشده شورای صرفی گفته تا چند روز آینده حتما تکیف فیلم فیلم‌ها رو روشن می‌کنم اما هنرمندای سینما از امروز که شروع هفته منابع طبیعی و روز درختکاری دارن خاطره‌بازی می‌کنن با درخت چطوری یعنی یادگاری می‌کنن رو تنه درخت نه اونجوری نه امروز سه اصل درخت به اسم علی نصیرییان سیفالد داد و علی حاتمی تو خانه سینما کشته شده روز سه شنبه ساعت ده صبح قرار هنرمنده سینما و تئاتر و موسیقی تو بوستان گفتگو جمع بشن و تو مراسم یک درخت و هزاران خاطره شرکت کنن و به یاد 200 دیویست هنرمند 200 درخت بکارن تو این بوستان به به خیلی هم خوب فکریه شاید ما هم به یاد چند نفر یا اله رادیو پاس فردا یه چند تا درخت بکاریم دیگه آره خود منم تصمیم داشتم به یاد چند از مسئولین هنری که سمو مؤسسه در عالم هنر این چند سال داشتم درخت بکارم اما هرچی گشنا پاش کردم درخت ارعر نداشتن من پشیمون شدم حالا <تصفيق> آره شاید بعدا یه مقدار فقط کود بریدم پای بقیه درختو دیگه تناکاری کرده هستم بفرمایید <تصفيق> خیلی ممنونم خسر شی از موسیقی چه خبر کامران والله امروز از آلبوم جدید علیرضا قربانی با آهنگسازی مهیار علیزاده به اسم دخت پریوار رونمایی شده این آلبوم دوازده قطعه داره و از فردا صبح در سراسر کشور برای خریداری در دسترس است. بسیار ممنونم ازت کامران عزیز باد خداحافظی می‌کنیم تا فردا که برگردیم دوباره و بریم یکی از کارهای همین آلبوم علیرضا قربانی رو به اسم پردنشین به اتفاق بشنویم. اینجا برای سوماش تن هوا کمند دنیا برای سسرو با سلام بیسته و شم به شب را ضمن تحییر از حضور همه مقامات ترشد نظام در مراسم تحشیر جنازه الله باوز تبسی با مروری بر عناوین مهمترین خبرهابی امروز و امشب آغاز می نماوی. حضور احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه در تهران و نگرانی ها از اینکه با وجود این همه اختلافی که دو کشور سر همه چی دارن این سفر اول آخر ایشون به ایران باشه با گرفتن موج نوروزی دست فروشی در گذرگاه مختلف شهر کشور و گمام نزنی ها در های در باوری افضاویش ظرفیت شغلی برای گروه شغلی چون داد بزن، خفتیر و بونجولانداز در این محابه و دشگیری عامل اسید پابشی به دو زن سمنامی البته خب س که خوبال حالا از همین یارو حدش اون اصیل پاش افشانیرا بگیرید چت بشن نسلش بالاخره همکارن اینا مهمترین ترین سقطهای خبری ساعات گذشته را شامل میشدند اینک مشروع خبرها با همکارم بوی بوی با سلام، بنا به گزارش‌های رسیده، مقبره لوتف‌علی‌خان زند، آخرین پادشاه زندیه در بازار فرش فروش‌های تهران به انبار فرش تبدیل شده است. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور بناهای تاریخی کشور به خبرنگار ما گفت: "البته از این مقبره فقط به عنوان انبار فرش استفاده نشده بلکه در گذشته از آن به عنوان انبار سنگ هم استفاده شده است و یفصود این که در کشورهای دیگر از یک عدد قلوه سنگ قدیمی هم به عنوان اثر تاریخی مراقبت شدید و عمل آورده و با بازدید توریست ها از آن درآمد سرشاری کسب می کنند امری مضمون و ناپسند است و با توجه به رفع سهریم ها و وجود زخایر غنی نفت و گاز در کشور عزیزمان ما نیازی به این کارهای بیهوده بر را یک به درآمد نداریم پایان محروف اخبار بله هم اکنون در خدمت کاروشیابس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی ترافیکاتی برنامه جاواغای جاواغسن هنگ است هنگ بله. جان من خبر داریم خبر دار با آزاد ماشین آقا آزاد ماشین منم سلام عرض می کنم. آزاد، آزاد فرودان. بله بله آزاد خوبی، خوبه انجام جان که قرار با... تره حبس مجرمان در خانه اجرا بشید چی این ماجراش؟ سران. عرض کنم که این طرح قرار است فقط برای مجرمانی خوب... تهرانی به صورت آزمایشی انجام بشه. سران یعنی چی آخه؟ چه جواری با... هی تهرانی شهرستانیش کردی؟ خب باشه همه اجرا کنید دیگه نه ببین بی... آقای عزیز میگم آزمایشی است خوب... این بنابراین م... فعلا فقط به صورت محدودی در تهران انجام میشه. خوبه والا ولادگی بی ببین با... خلافکار تهرانی و شهرستانی هم فرق هست. نه خیر. خب حالا چه جوری هشین طرح؟ نه, نه ببینید عرض کنم که مقرر شده است که با تشخیص غازی بعضی از محکومین به این شکل در منزل حبس بشه. نه یعنی یه دستبند ببندن و توی خونی خودشون باشن. حالا یعنی الان موسوی و راهنورد و کجرو هم از این دستبنده دارن؟ آقا جون نه خیر مم. اونا یالمه مامور نیازی به دستبند ندارن. خاتمی چی سرنگ خاتم نه خیر ایشونم. چیزی بهش وست نیست آفا چون شنیدم که عروسی دختر موسوی نزداشتم بره گفتم شاید از طریق دستبند کنترلش کردی پس به پادر ایشونم دیگه سرنگ بله بله خب بالاخره دستگاه امنیتی حواسش به آه. همه هم ولی سرنگ خدا وکیری این ب... دستبند نستبند وازیاتون واسه کانون خانواده زرر داره بله یعنی خوش... چی چی چه رابطه دارد با کانونی خانواده؟ ای ببین رابطه که دیشب خانم من میگو فایده دون از این دستبنده بگیرم بعد ببندم که همیشه امالتو داشته باشم و این حرفا. آخر چون بیرون اصلا موجود نیست این دستبنده آقا جو... خوشا این زنا میرن پیدا میکنن س... ما این چیز رو چی میگی تو؟ خب شما ای... کجا ها میره که نمیخوای خانم بفهمه؟ ای بابا سرنگ بالاخره آدمی با توانایی و محبوبیت من ها... خیلی جواب که خانمش را به چه فهمی دیگه بابا بگی دیگه بالا نو بارش ما چرتو پرت میگیر دیگه دیگه کاری ندارید بنده برم سران یعنی چی تازه شروع کردیم همش میخی بری از پیش من چرا یه امروز زفته بودیم مشد شما هم سران نه خیر بنده اینجا ماموریت داشتم جای نردم آخه خدیدم همه مسئولین رفته بودن تشییع جنازه آجا قواص گفتن شما هم رفتی دیگه حتما. حالا من یه صحبتی بکن منه بذارن جایش یعنی چی دید. چی من شما روحانی هستی بچه تولیت حرم بابا اونجا روحانی نمیخاد که اونجا پول میخواد میخاد منم استاد پول شماری هم دیگه آقای جینی علی از... روح... بی بی خجالت بکش پاتا از تو کفچه روحانیت در بیارم این جنب میمیری ببین حالا رئیسم نشد بگو چیش کنن منو بذارن اه... مسئول نگهداری میکروفون مثلا عزیزی من منم راضی به جای چه <تصفح> شما سا که اونجا جای افرادی صالحا مو ردیه تم عادث. عجبا یعنی من غیر قابل اعتماد شدم سرهنگ این بود قرار ما آقا جون ببین شما دوباره داری بحث و خراب میکنی من دیگه باست برم آقا خدا نگر دلم رو شکستی سرهنگ بله بعد از این همه سال یعنی تو به من اعتماد آقا. نداری دلم گرفت یعنی دلم جرفت. باید بخونم تا این دل لامه سبارم شدیگه شد بله دوباره شروع مم. کردی شما دیگه واقعا این وز خجالت آوره من نمیدونم چرا به شما با شما برخار نمی کند آقا جو واقع. دلم مثل دلیت آقای عزیزی کونه شغایق آقای میکروفان ششم دریای بارونه آقای عزیزی من شغایق نمی خواهم صدای شما رو بشت نمی خواهی گوش کنی من میرم اون بردیگه چه گیری دادیگه من میرم من خودم اون میکنم بله. دلم مثل دلت خونه شقایق بل کانی ما جرام نیستیشم شقایق شقای در زمان یکی تا. نیست ما آقا چه در بله <responsible> hmm منم سلام آمرض میکنم کنمم خدمت شما و تمامشننوندگان محرمدون بنده و قندی میخواستیم از شما و تمام دستن در کار های رادیو بامزه و, با و دوست داشتنی پس فردا و همین جور قدری کنیم از حضور این بچه های جدیده بامزه و خوش صداتون با تشکر من اه این قندی مرسی بله جناب سرهنگ بودن یه مدل دیگه یه مدل جناب سرهنگ دیگه بودن خیلی ممنون از شما. دیگه عرض و حضورتون که لطف کردید دیگه همین چی بگیم دیگه اما بریم سراغ خاطرات و نوستالجای کودکی که امروز داریم رجبش حرف میزنیم اصولا ما آدم وقتی بچه ایم همه خودمون تیکه پاره میکنیم تا بزرگشیم. شیم یعنی من قول میدم قول میدم صدی 90 بچه ها اگر ازشون بپرسی آرزشون چیه میگن این به نظر ما بزرگ شدن یکی از چیزهایی است که هر نو بدی علاقه من داشت. اون به چون آدم تا بزرگ نشود که نمی اون استوخودو کنه مت. بعد همین شاهزاده وقتی بزرگ شد ازدواج کرد، آوار مشکلات زندگی رو سرش خراب شد. هی چپ میره، راست میاد میگه وای داد تبه بودیم. همه دغدغمون این بود بری فوتبال بازی کنیم، پشت سرم پیش معلممون هی خود شیرینی وای کجا رفت اون روزا؟ اینه که اصولا آدمی زاد گونه ای است. خاطر زده، دلتنگ، خسته و آهکش جان؟ آهکش پش نیست ها؟ من الان خواهدم برزن آه سوز... سوزناک میکشم جانگو داز اینجا آه کجا رفت ها خون ها؟ آقا هی از در و دیوار بالا می رفتیم هی میزیم تو سر کلله هم دیگه ای زنگ خونه رو میزدیم در می رفتیم سرکات کاغذ میشهپونیم تو خودکار فوت می کردیم از این لوله خودکار می زدیم تو پوست پرتقال فوت می کردیم تو صورت این اون نمیدونم گچ پرت می کردیم تو... هی معلم ها رو سوجه میکنیم سر و صدا در می آوردیم میذا رو تکون میدادیم با بگم بازم دیگه حضزار از اش چشماشون چشما دیگه مردن دیگه اشریختن ای بابا خاطرات دیگه, دیگه درمون قطعی نداره که. فقط دردش همجوری کم و زیاد میشه والا من از اون خاطره کودکی ها من از اون ستاره ها گولکی ها من از اون گرفتن غاس دکا من از اون پردادن باگ با دکا میخونم میخونم میخونم میخونم من از اون شوق رسیدن بها من از اون نفسین پر و نگاه من از اون جوونی و شور و شرر من از اون شوخیای پر از خطر میخونم میخونم میخونم میخونم, میخونم من بچهگی هم روستا زندگی میکردم هوای تازه، میوههایی که از درخت میچیدیم گلبازی تو کوچه ها، شنا تو جوبه کنار خونه قدیمی ننجونینا یادش بخیر. بهترین خاطرات من مال همون روزاست تا سالی آخر دبستان که اومدیم تهران این سوریا دوستمم هم از همون بچگی تو روستا میشناسم هم با هم تصمیم گرفتم بیان تهران وقت پری شب خونه سوریا و بودم دیدم داره برای یکی از مهمونا خاطره از بچگی‌اش میگه که رفته بوده استخره تو الهیه با مامانش اولین دست و پا زدن تو آب اونجا تجربه کرده گفتم سوریا اولین باری که شنا کردیم که تو جوب محله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 بعدم به تعریف کردن خاطره جعلیش ادامه داد یعنی من اصلا نمیفهمم اینا رو که نوستالژیاشونم بر اساس مود و بسته به مخاطب عوض میشه خوب باز الان فیسبوک هست هی hey, هر روز یادآوری کنه سالها پیش در چنین روزی فلان خاطره ماشین مشکی ممدلی ارزون و بیمعتلی. ماشین مشکی ممدلی نه داره نه سندلی. دا حالا حالا ترنگ پکری شما بابا بیخیار بابا دنیا دو روز دیگه زونه کارو کاسبی یعنی خوابیده آه شبه ایده همه کاسب دارن تیم بادامشون گردو میشکلن که آه. زدی میگی این خبر ها نیست کارو کاسبی چی از شما لوازم خونگی زونه با آه این تلگرامه موبایلت؟ اتفاقا ما حال میکنم با کار شما میشینی تو مغازه وسط تی یا عالمه تلویزیون روشن و لباسشی یا چه میدونم گاز و یختال و اینا مشتری ها میان ایزنس میخرن میرن بدون درد سر دیگه زونم عذیت میکنی یعنی کلن دارین مگز میپرونی چی زونمه یعنی همین تلگرام نبود شما میپوسیدی همش داری دک میخونی دیگه <تصفح> ای بابا چیه باعتما دیگه, دیگه فشار اومده که انقدر دماغی دیگه شما ببین آخه براخره مردم تی مصرف پصرف که میکنن یعنی چی آخه زونه آه. آه یعنی همه یا قسطی میخون یا تکی خب چرا نمیدی بهشون آه راست میگی دیگه آه تو این مملکتی واسمالت و صفه تسلی کسی نبرتش زمسو قسطی بدی بدید از سه طرف میره حالا شما باید سی... کفشوانی باید بپوشید و دوی دنبال آره راست دیگه آره کار ما این که خب نقدیه چیه خوبه دیگه مایش خوبه و نقدیه با این آخه دیگه چرای تاکسی رو همه میخوام قسطی بگیریم که فاتحه بخونده است تلگرامه بازاره بله والا چی بگم دیگه اینا خودشونون بالا نشستنه میگن تی درست میشه درست میشه اول گفتن این تحریما رو برداریم همه درست میشه بعد گفتن برین تی رأی بدین مجلس نمیدونم درست شمه تی ردیفه هیچ خبرمبری هم میستو ای بابا باش میگم والا اما کاسبیم تی یه دورایی برحال هم شما دیگه یه دونه از این تیلیویزیون گنده هست میخوره سینه دیوار از این چیزی بزرگا دیگه سلپنزا این چینا آره یه دونه به ما بدی با چکه مدت در میاد دوش آه چکی نمیدی با سفتی تو هم ها میگم دوتامون کاسبیم نو کرتم کاسب مال کاسبا نمیخونه که شما ای با باشه و عرض راحتی دیگه بالاخره مالت دیگه اختیارشو داری والا همین دیگه داشت کشی ما رو موبایل رو بیخیال شده دیگه دیگه بعد بگیم دست زنس دنسه... چی بده و ما نمیده چکی همینه کاسب نیستی شما سی بگم والا کاسب ها کاسب های بعدی نشسته دلگ دلگ دلگ یه تند بوی گل بوی گلای اطلسی مثل شکوفه های سی عشنگ و دوغ از دست وقتی میای آیی بخار می بوی گل نور میاد ازیک من اسیم سو از روی سبز زور میاد که آب سرد سال توی صورتی آنال توی اگه خمار زندگی منی که در خواب لذت شراب صد سال توی صورتی آنال توی آگه خمار آیا از حضور یک فتنه در عروسی دختر یک فتنه دیگر نگرانید؟ آیا از برگزاری مراسم پاتختی با حضور تعداد زیادی فتنه در یک مکان خوشحال نیستید؟ آیا از اینکه یک فتنگر بالای سر یک فتنگر دیگر قند بسابد ناراحت هستید دیگر نگران نباشید واحد خال زنکی سیستم های امنیتی جمهوری اسلامی ایران دیگر اجازه یه حتی کندن یک موز را در مراسم عقد و عروسی به فتنگران نمیدهد آج آقا به نظر شما هماسه جلوگیری از حضور خاتمی درخت دختر موسیوی چه فوایدی میتونه داشته شاید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 دیدی برادر امنیتی پیغامول عروسی دختر فتنه‌گرای چقدر خوب بهم آره خواهر، به نظرت این برادر رو واسه بهم ریختن عروسی فتنه‌گرا نیری خواهر نمی‌خوام؟ ها، ما به عنوان یک خواهر بسیجی همیشه دوست داشتم با یه برادر عروسی به هم ریز امنیتی نزدیک کار کنم. منم هم همینطور. با ما یک آب خوش هم از گلو فتنه‌گران پایین نخواهد رفت. چه در عروسی، چه در عقد و چه حتی در بله برون و جهاز برون.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 فریبرس پیش ما بیا اومدم. اومدم. <تصفيق> اونم <میگه> اومد <تصفيق> <تصفيق> ببین برنامه هزارم تو این چه چیزا در نزدیک برنامه هزار چه چیزایی کشف کردیم. چه خبر تو این دو سه روزی که نبودیم این فریبرس؟ از هست تیم شنای معلولین و جوانبازان کرمان شروع کنم که دلیل هست جالب تو مسابقات کشوری این صدای گزارشگر سیما از رو گوش کنیم که توضیح داده به چه دلیلی این تیم هست شده. اوگاه کرمان ساعت 1 به سه تیم شنای جانبازان باززار استان کرمان به دلیل اینکه پرواز کرمان به مشهد این تیم رو به دلیل بچری بودن سوار نکرد این تیم از مسابقات درانی کشور بازمون مسئولین کجان ؟ بله حالا بله ما نمیدونیم دقیقا باید یقه کیو بگیریم هوا پیمایی و مسئولین ورزش و کیو و بالاخره و هم دل ما یقیقه همه رو می ولم نمی دیگه چه خبر؟ بله؟ فقط معمولا اینم بعد بگم البته فوتبالی ها میدونن بعد از تموم شدن هر مسابقه تو ورزشگاه آزادی شب که است ما گزارشگرش میره پایین تو ورزشگاه تو چمن سبز داخل زمین مسابقه میکنه با مربیای دو تیم این مسابقه هم حتما باید جلوی تابلو تبلیغاتی اسپانسر بازی انجام بشه مثل این کشورهای خارجی درست. اما چون تابلو استاندارد تو ورزشگاه آزادی استاندارد اون تابلو نیست یکی مسابقه ها به خاطر باد افتاد رو سر یه مربیه. بعضی نفرو گذاشتن یه تابلو چوبیه. آره روش یه دونه چیز میچسبونن، چوبی همینج میذارن. آره، بعد حالا جالبه. یه نفر به کاشیف دست اون بسته سو رادیو نمیشه اون عکسو نشون بدی که میگیره واقعا دیدره این عکس تجلطا آور فرشی. چه میدونم والله ولی اینجوری بهش نگاه کن که مسئولین میخوان اشتغال زایی بشه برای جوانا دیگه. نمی پرو لیوانو ببینیم بهتره. حالا یکی بعد بذارن اونجا اینو نگهدار خور خودش هم یه حقوقی کار ذاتا میگیره دیگه. اینم هم یه حقیقی شغل خوب خبر آ... تیم ملی قرار شروع بشه تیم ملی فوتبال هفته دیگه برای ادامه انتخابی جام جهانی اما امروز خبر اومده که چند تا زمین از جمله زمین های عبدالعباد احمد آباد و زمین های زمین دوشان تپه رو پیشنهاد کردند به کیروش یکی از سایت ها نوشته کنار این زمین ها خیلی کارا انجام میشه دیر از فوتبال بله آقا من به نظر من بچه های تیم ملی ببرم پارک ملتی جایی چهار دنو سعیم بکارن تورک دولایر هم ردیف کنن بازی کنن دیگه مشکل نداری که اینقدر اذیت میکنن خودشون ایران یا هم ممنونم از در فریبارز غریب باید خدافزی میکنیم تا فردا تا فردا خدا نگه همه شوخیه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 از یه سنی به بعد به خودت میای میبینی که نه تنها در ایام نوروز کسی بهت عیدی نمیده بلکه یه عده جقلم در دید و بازدیدهای عید همیشه دورت میکنن عیدی میخوان ازت آقا واقعا اینو دیگه آدمی که خودش درگیر افسوس خوردن برای خاطرات خوش کودکیه نمیدونه کجا دلش بذاره این بحران که به نوستالژی کشنده شب عید هم معروفه و در سنین بزرگسالی بروز میکنه یکی از بحرانهای روحی خیلی مهم تو زندگی بیشتر آدماست که خوب متاسفانه زیاد در موردش صحبت نمیشه و در بیشتر مواقع این بحران پشت همون تبریک گفتن‌ها و تعارف‌ها و تو دید و بازدیدهای ایام عید و اینا از نظر دور میمونه به چش نمیاد. به حال ما وظیفه‌مون بود تو این روزا که کم کم داریم به عیدام نزدیک میشیم در این مورد اطلاع رسانی کنیم بلکه اندکی از درد و رنج عزیزانی که با چنین بحرانی دست به گریبانن کاسته بشه. بابا لگه بابا لگه روزنامه روزنامه پیش خوب. روزنامه افتابه از به نقل از نماینده ولی فقیق در امور حج و زیارت اعلام کرد برگزاری مناسک حج سال آینده با عزت و قدرت یعنی چه میخوان سال بعد حج رو با قدرت برگزار کنن؟ یعنی میخوان سال بعد حاجیای عزلانی و هیکلدار بفرزن حج بگن حالا میتونین هول بدین؟ روزنامه شهروند با اشاره به نتایج انتخابات، از قول احمد خاتمی امام جمعه تهران امروز تیتر زده بود که رفعه کدورت کنیم. یا خود خدا. اگه این رفع قدورت لازمه‌ش ما چوبوسه با آقای احمد خاتمی ما جسارتان ترجیح میدیم تو سر جاش بمونه. چه کاریه حالا؟ روزنامه شرقوند به نقل از رئیس کمیته امداد امروز تیتر زده بود که فقر به ما حمله کرده. باید به آن هجوم ببریم. بیخیال خیال تو رو خدا ما همجوری در موزه دفاعی سنگر گرفتیم داریم چاپوراز تلفات میدیم. حمله بکنیم که دیگه چپ... چیزی باقی نمیمونه ازمون که برای پایان برنامه امشب ترجید دادیم با یه صدای فوق العاده بریم به دنیای کودکی یه بازیگر بزرگ. پس با هم می‌شنویم خاطرات کودکی پرویز پرستویی رو با صدای ناصر طهماسب تا ما هم خودمون رو در این سازی هنرمندان شریک کنیم. شبتون خوش. در بین آدمایی که جدا از تلاش و کارو گذران و زندگی، دل دیگر هم داشتن و اون لحظاتی فارغ شدن از های روزمره بود. لحظاتی برای شادی و خنده و به شگفت اومدن از مرکه گیری که جعبه مرکهشو باز میکرد و یه مار از اون بیرون میآورد یا پردخونه که پرده میگشود و با کلام گرمش جهانی رویایی رو پیش تخیل اونا مجسم میکرد یا پهلوانی که ابزارالات پهلوانیشو پهن میکرد و رجاز میخوند و زنجیر پاره میکرد و سینی جرمی میداد. تمام اینا در اون محیط تنگ و بسته چیزی خارج از تلخی تلخ Oh No.